وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد قال الإمام الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين وبدل مهجته فيك ليستنخذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من نعم جميع الله السلام الله اللہ تعالی توفیق یافتیم دومین جلسه ای از سلسله جلسات سبشناسی و روشناسی بانوان طلبه کابول و جامعه سازی رو برگزار کنیم امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین در یک تکش چنین میفرماید. وبدل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهل خدایا امحسن عليه الصلاة والسلام مهجة را برای تو بدل کرد، بخشش کر بخاطر چنین کرد، ليستنقذ عبادك و خاطر چی چون کرد؟ به این که بندگانت را نجات دهد از چی من الجهاله و حیرت ولاله بندگانت را از تاریکی از جهل نجات دهد و از سرگردانی و گمراهی نجات دهد وقت در تعبیرات امام صادق علیه السلام دقت کنیم کلمات و واژه‌های با معنای در این جمله کوتاه کار رفته است با وجود که این تکه یک از تیکه های زیارت اربعین هست ولی در هم یک تیکه بسیار قابل اهمیت توجه هست امام علیه صلات و سلام می و بذلا و بذلا یعنی برای تو چونین کرد یعنی به اراده خودش کرد اگر کسی چیز را به کسی دیگر ببخشد میگه فلانی بدل کرد بخشش از روی خواست خودی بخشش کننده هست نه اینکه به زور تسلیم کرده باشد اینجا امام علیه السلام با اراده خودش خون خودش، خون اصحابش رو در راه خدا بازل میکند این یه یعنی. بعد میفرماید مهجته هو فقط امام علیه صلات و سلام خونش رو در راه خدا نرخته. مهجه همو خون قلب را میگم یا تعبیرات مهمتری از این اگر بگیم که قلب اساس وجود انسان هست اگر قلب از کار بیفتد همه بدن از کار میفتد این تعبیر در این جمله امام صادق علیه السلام کار رفته است امام تمام هستی دلش و رگ دلش را بر راه خدا می داده است مهجه یعنی همو خونی که ما و شما تعبیر می میکنیم یا همون قلب به تعبیل دیگه اینا همه شان معنی همسانی دارند گرچه گاهی ازش قلب یاد کنیم گاهی ازش دیل یاد کنیم چون قلب خودش معنی های متفاوتی دارد قلب گاهی همون یکتی که گوشت است که در بدن انسان و در سینه انسان هست قلب گاهی معنی ای دارد و گاهی از قلب همون چیزیست که ما و شما و دل تعبیر میکنیم وقتی میگیم فلانی دل داده است در راه خدا یعنی همه هست بودش رو در راه خدا داده است اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید حسین خون دلش رو در راه خدا بهزل کرد چون که کشته شدن آسان است از کشته شدن کرده اینه که آدم عزیزانش را لحظه لحظه در پیش چشمش ببیند اون سختتر است اینجا خونی دل داده می شود و بدل محجته فیک حسین علیه السلام مهجهش را در راه تو داد لیستن قده تا که نجات دهد این واجه استنقاض را هم دقت کنید یک دفعه هست که آدم کسی را از جای باز میداره نمیگذاره بره. مثلا از سفر مانعش میشه این نجات دادن از خوف و خطر هست ولی استینقاض حساب نمیشه نجات دادن حساب میشه نه اون کلمه که کلمه استینقاض را بکار ببریم استینقاض در جای بکار میره که آدم داخل آب شده باشه و در حال غرق شدن باشه اگر کسی پیدا بشه آدمی که در حال غرق شدن است را نجات بدهد در اینجا کلمه استینکاز را به کار میبرد امام صادق علیه السلام میفرماید حسین خون دلش را در راه تو داد خدایا تا که بندباند را استینکاز کند نجات دهد مثل این است که همه بندگان خداوند در حال غرق شدن و تلاتمهای آبها هستند و بودند و امان و السلام بندگان خدا را این گونه نجات داد من الجهاله از جهل و نادانی و حیرت الزلاله و از حیرت و حیران بودن زلالت و گمراهی این تا... کلمات رو باید دقت کرد زلالت و آنی گم راهیز وقتی یک, یک جای تاریک باشن شب باشه و تاریک باشن و نفر همراهش را گم کرده باشد اینجا حیران میماند چی کند اگر از حرکت کند میترسد از مسیر دور بشه چون اگر راه به سمت راست باشد این نفر به خاطر دوری راه به سمت چپ حرکت کند هر اندازه تلاش کند همه اندازه از راه دور می شود همه اندازه از مقصد دور می شود به این سمت حرکت کند به آن سمت حرکت کند به هر سمت حرکت کند به همه اندازه که حرکت کرده از اون هدفی که داشت دور می شود جز این که به اون راه که باید می رفت, می رفت. اینجا حیران میماند واقعا که چی کند. لزامه علیه الصلاۃ و سلام آمد اینجا مهجاش را و قلبش را و خون دلش را در راه خدا داد تا بندگانش را این گونه از جهالت و از زلالت و حیرت نجات دهد. وقتی امام علیه الصلاۃ و سلام چنین می‌کند بحث ما هم بحث بانوان طلبه هست در سبک شناسی در روش شناسی بانوان طلبه هم همین مسیر رو باید دنبال کرد این گونه باید تا جایی و پیش برود که خون دلش را در راه خدا بیدهد تا بندگان خدا را از حیرت زلالت و از جهالت نجات دهد تا توفیق یا بد به و شهدای کربلا نائل بشوند ما در این انوانی که داریم چند تا کلمه کلمه اصلی می تواند باشد کلمه کلیدیست که باید یکی یکی رو بیدانیم و باز کنیم تا که بحث من رو به پیش بریم عنوان ح... ما هست بانوان طلبه کابل و جامعه اصازی آشرائی اولین ای که در این عنوان به چشم میخورد واژه بانوان هست بانو چیست؟ چی کلمهیست؟ بانو به معنی زنیست که بزرگزاده هست خانوم که از خاندان بزرگ به دنیا می و به دنیا آمدند به این خانوم بانو گفته می شوند. و همچنین خانوم که خودشان ارجمند هستند ممکنه در یک خانواده که در پیش مردم بزرگ باشد به دنیا نیامده باشد ولی خودش از نظر شخصیتی به جایگاه رسیده است و در پیش مردم و در ای که زندگی می کند دارای عرج و است به این خانم هم بانو میگویند یک نوع عنوان احترام آمیز است برای زنان وقتی زنی را احترام کرده باشند در اول اسمشان یا در آخرشان بانو را استفاده می این واژه بانو امروزه کم استفاده میشه در زمان سابق استفاده میشد در زمان فعلی ما ب جای واژه بانو از کلمه خانم استفاده میکند منتعا در زبان نوشتاری و در زبان رسمی وقتی بخواهد چنین عنوانهای احترام آمیز را به کار ببرند برای خانومی استفاده میکنند که شوهر داشته باشند. خانومهای شوهر داره ارجمند رو خانوم بهش میگویند. امروزه در زمان سابق بانو استفاده میکردند. این که اصلی واجه بانو چیست؟ نیست. از کجا آمده؟ چطوری بانو شده و تشکیل شده؟ نظریات مختلفی که هیچ کدام از آنها قابل اعتنا نیست. به هر حال واژه بانو یک واژه احترام آمیز است برای زنان. اما در دوره های اسلامی آمدن به جای واجه بانو از کلمات دیگه استفاده کردن مخصوصاً در دوران فرمانروایی شاهان تورب نژاد. به تدریج کلمه بانو عوض شد واجه های عربی و ترکی و مغولی آمد برای احترام به بانوان استفاده شد واجه های مانند ستی، بیبی، بی، آقا، آقا برای مردان هست، آقا برای خانوم ها خاتون، بیگون و خانوم جایگزین بانو شده است. بنابراین اگر در کتابهای ما چنین این های را میبینیم که کتابهای قدیمی است البته بی بی رو تقریبا فعلا هم استفاده میکنیم سیده که واژه عربی است خاتون هم واژه عربی نیست ولی وارد زبان عربی شده است حکیم خاتون داریم اینها ها و تعبیرات احترام آمیز است که برای خانوم های با قدر و با منزلت استفاده میشن برای خانم خانوم هایی که خودشان از نظر شخصیتی خودشان رو به جای نرساندن یا در یک خانواده بزرگ و بزرگواری نیستن، به آنها کسی خانوم بیگم و مصالحم نمیگویند. این واجه واجه احترام آمیزی است که برای بانوان بزرگ استفاده میشود. پس بنابراین ما داریم بانوان طلبه کابل. یعنی ممکن است یک زنی طلبه باشد ولی خود را با اون ارزشی که باید میرسان نرسانده باشد لذا بانو نیست خانم نیست فقط زنیست دیگر تمام واجه بعدی که داریم طلبه هست طلبه خودش یک کلمه است طلبه و طلاب هر تایشان جمع هست یعنی طلبه ها طلبه و طلاب جمع طالب هست طالب به معنی دانشجو، علم آموز دانش آموز اما این واژه طلبه رو معمولاً برای همه دانشجویان استفاده نمیکنند کسانی که در دانشگاه درس میخوانند به آنها طلبه نمیگویند در زبان فارسی البته در زبان عربی بهشان طالب میگم طالب و طالبه ولی در زبان فارسی به افرادی که به دانشگاه درس میخوانند با مدرسه های ابتدایی و مکاتب درس میکنند به آنها طلبه نمیگویند بلکه دانش آموز و دانشگاهی بهش میگویند و دانش بهش استفاده میکنند در زبان فارسی طلبه اسم مخصوص کسانی است که در حوزه های علمیه دینیه درس های دینی, دینی میخوانند بنابراین کسانی که در حوزه علمیه هم درس حیعت بخوانند درس نجوم بخوانند و درس های دیگه بخوانند آنها طلبه نیست طلبه کسیست که دو تا ویژگی درش باشد یک در حوزه های علمیه دینیه درس بخواند نه در دانشگاه ها و جاهای دیگه دو علوم اسلامی درس بخوانند، نه علوم انسانی و امثالهم. کسی که این دو تا خصوصیت درش جمع شده باشد برایش طلبه گفته می شود غیر این دو تا خصوصیت برای بقیه دانش آموزان چی زن باشد چه مرد باشد طلبه گفته نمی شود. طلبه و طلب جمع طالب هست ولی در زبان فارسی یک تغییر دیگه هم آمده طلبه در زبان عربی جمع است ولی در زبان فارسی مفرد است به یک نفر طلبه میگویند ولی اگر چند نفر طلبه باشد به هیچ طلاب این تغییرات است که در زبان فارسی به این واجه آمده وارد شده است پس فهمیدیم که بانو چیست و طلبه چیست یکی یکی اینها رو باید متوجه باشیم که بعدن بفهمیم که آیا وارد این طیفه که باید این بحث رو دنبال میکنیم هستیم یا نیستیم و وارد میشویم یا نمیشویم کلمه بعدی که خود خودنمایی میکند واژه کابل هست کابل را همونطور که ما شما میدانیم اسم معروف و مشهور برای یک سرزمین خاص هست اما همین کابل در, زم... در زبان سانسکریت یعنی یک زبان هندویی و دین هندویزم به نام کوبها شناخته شود. کابل تحت نام کوبها در یونانی بستان به نام کابورا شناخته می شود کابول در یونانی امروزی ارتوسپانا شناخته می شود در زبان چینی کافو بهش می و در زبان عربی کابولستان بهش می گوین. انگلیسی همو کابول هست البته امروزه در زبان عربی میتوان جای کابلستان کابول بعد از با واک که اضافه کنیم باز هم میشود کابل ولی کابلستان هم در زبان عربی از این سرزمین یاد شده است کابل تنها شهر میلیونی است در سرزمین خراسان کبیر یا به نام جعلی امروزی افغانستان و پایتخت تخت این کشور هست که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت در این سرزمین زندگی می کند کابون جمله شهرهای های دقیق کنیم وقتی چون موارد را داریم آمار گیری می کنیم هر ای که در قسمت آمار می آید همو انگاز وظیفه سنگین می کند یعنی اگر در کابل یک هزار نفر زندگی میکرد، وظیفه جامعه سازی آشورای توسطی خانم آسانتر بود حالا که یک میلیونه خیلی زیاد حالا که شده پنج میلیون بلکه بیش از پنج میلیون پس وظیفه خیلی خطیرتر و مهمتر و سنگینتر می شود شهر کابول از جمله شهرهای کهن و 94مین کلان شهر جهان هست در کل جهان کابل 94مین شهر است که در کل جهان از شهرهای بزرگ دنیا حساب می شود این کابل این گونه هست با وجودی که ظاهر چندان چشمگیر نیست و همه کابول از نظر سرعت رشد جمعیت در رده پنجمین شهر جهان قرار میگیرد. پنجمین شهر جهان که دارد جمعیتش سریع رشد میکند، کند و زیاد می شود، کابول این گونه هست. این کابل، حدود پنج هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام شهر بوده است الان دو هزار چند هست؟ دو هزار بیست دو دو, دو, دو. <عنان> یا بیست یک هست؟ بیست دو پنج هزار سال قبل از میلاد حضرت ایسای مسیح علیه السلام یعنی پنج هزار سال را به اضافه ۲ 2022، کابل از این هم مدت طولانی به عنوان شهر به عنوان سرزمین آباد بوده است. از این جهت است که کابل یک شهر قدیمی دنیا حساب می شود. در آثار و کتاب مورخان کسانی که تاریخ میگشتهاند، در مورخان عهد اسکندر و در جغرافیای بتلموس از کابل به نام کابورا کابورا و اورتوس یاد شده است در جغرافیای ب... بتلموس نگاه کنید. این کابل اولین بار در سال 1152 شمسی که حالا 1000 441 هست. اولین بار در سال 1152 شمسی و در دوران حکومت تیمور جانشین احمد خان دورانی پایتخت حکومت میگردد. کابل چنین شهر است. پس اگر به طور خلاصه یاد کنیم از نظر جمعیت کابل بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارد. حالا طلبه های بانوی کابل چی نقشی را و چی گونه نقش را باید بازی کند که بی تواند بیش از 5 میلیون نفر را نفر آشورایی بی سازد مسئله چقدر مهم می شود بحث بعدی که در همین همینجا باید ادامه دهیم بحث شیعیان در کابل هست شیعیان در صددهی سوم قمری و همزمان با فتح کابل توسط یعقوب و سفاری در این شهر ساکن شدند حالا ما وقت تاریخ تاریخ قمری را بررسی کنیم محرم اولین ماه سال قمری است فعلا شده یعنی ماه اول 1444 قمری در سال در سده سوم یعنی 300 سال وقت کابل فتح میگردد توسط یعقوب سفاره شیعیان هم وارد همین سرزمین میشود از آن زمان تا کنون کابل در خود شیعیان را جای داده است بر اساس منابع مختلفی که عدد و ارقام مردم را می‌نویسد و بود باش مردم را ذکر می می‌کند شمار شیعیان کابل را تا نصف جمعیت تخمین زده‌اند یعنی وقت کابل بیش از پنج میلیون نفر باشد حالا اگر به طور چشم پوشی بگیم 5 میلیون دونیم میلیون شعه در کابل وجود دارد دونیم میلیون شعه در کابل وجود دارد البته این شمار در دوره دولت کمونیستی و دولت مجاهدین به نیم جمعیت کابل بود ولی در دوره اول حکومت امارت اسلامی جمعیت شیعه متاسفانه به کمترین حدش رسید پس از فروپاشی آن حکومت دوباره شعهان به کابول برگشتند مناطقی که بیشتر شعهان وجود دارد البته بر اساس اون چه که پرسجو شده است فعلا تقریبا در تمامی نقاط کابل شیعیان هست ولی بعضی از نقاط کمتر است بعضی از نقاط زیاتر هست منتها اون مناطقی که بیشتر شیعیان وجود دارد در غرب کابل بیشتر هستند این ناحیه غرب کابل شامل دشت بارچی افشار، قلعه شهادن کارته سه، کارته چهار و کارته سخیز و همچنین شیعیان در محله های چین داول، قلعه فرقالا، وزیر آباد، که ما و شما تقریبا در همی دسته هستیم و تایمنی سکونت دارند. اینجا جاهای معروف و مشهور است که این تیف از مردم زندگی میکنند بلکه در کل کابل تقریبا شیعیان هست پیشینه ی حضور شیعیان در کابل هم طوری که یاد آوری شد در سده سوم هجری میرسد و قزل باشهای که آن زمان در کابل زندگی می کند و زندگی میکردند در کابل نقش بازی کردند تاثیرگذاره های سیاسی فرهنگی، نظامی و اجتماعی شیعیان در کابل توسط قزلباش‌های شیعه آن زمان در کابل بوده است. فیلن هم البته این قوم وجود دارد قوم قزلباش. با این وجود متاسفانه شیعیان در قرن هجدهم و نوزدهم هومی میلادی دوچار کممهری و ستم پادشاهان آن وقت قرار میگرد پادشاهان مثل عبدالرحمن و حبیب الله لذا بالای این مردم ظلم های صورت میگیرد با وجود که شیعیان قزل باشه کابل در زمینه های اجتماعی و سیاسی نقش بازی کردند. در سرزمین کابول به همده دایتالا در این اواخر نهزت علمی بین این مردم تقریبا ایجاد شد هم از نظر علمی علمی اسلامی و هم از علوم انسانی در این اواخر ما شاهد نهزت سازی بودیم شاهد نهزت درسخانی به این مردم بودی و کابول شاهد تأسیس حوزات علمیه زیادی از برادر و خواهر بودن این در حالی است که در زمان سابق حوزه علمیه در کابل کم بوده است ولی معروفترین ترین حوزات علمیه‌ای که می در کابل ازش یاد کرد و نام گرفت عبارت از جامعه الاسلام رسالت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله درود و سلام بر محمد و آل محمد برچش اهل البیت علیهم السلام مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام زینبیه کارت چهار مدینه العلم و محمدیه تیفه سلام را میتوان نام برد. اینا مدارس معروف است که در کابول وجود داشته بعضی های از این مدارس در این اواخر تأسیس شده است. تعداد از این مدارس در زمان سابق هم یک مقدار قبل بوده است مثل محمدیه تیفه سلام که توسط حضرت آیت الله العظمای واعظ بهسودی شهید تأسیس شده است. زیارتگاه هایی که در کابل وجود دارد معروف ترین زیارتگاه های ما زیارتگاه سخی پیر بلند و حضرت اول فرد و السلام هست و البته گفته میشه که در شهر کابل برادر امام رضا علیه السلام و تعدادی از امام ها در دارالامان امان باغ بالا و مسجد شاهد و و غیره مدفونه تعداد از امام ها و برادر امام رضا علیه السلام در کابول خود ما تعدادی از مساجد و تکایای معروفی را در بیش ایان داریم. این یک اطلاعات مختصر بود که از این سرزمین برای اون بانوانی که میخواهند در کابل نقش بازی کنند ارائه شد و البته خوب است بیش از این هم تحقیق بشود این کابل پایتخت سرزمین خراسان کبراست یا هم خراسان بزرگ نام این سرزمین و این کشور همونطوره که ما و شما میدانیم در زمان سابق افغانستان نبوده است بلکه خراسان یاد میشوده است و در روایات و در زبان روایات هم ما از این سرزمین به نام خراسان میشناسیم و واژه خراسان در روایات آمده است واجه افغانستان نیامده است افغانستان را یکی از حاکمانی وقت نامگزاری کرده است گرچه ام افغانستان تقریبا میشه شود گفت نام یکی از اقوام ساکن در این کشور هست نام سابق این کشور خراسان بوده است و در تحقیقات هم وقتی بررسی کنیم از این مرزوبم فعلا هم نام خراسان کبرا یاد می شود در زبان عربی خراسان کبرا یا خراسان کبرا یاد می شود در زبان فارسی خراسان بزرگ است. با توجه به این ما فیعلا نام افغانستان را داریم برای بانوان طلبه و همه کسانی که در علوم اسلامی و ارزشی توجه میکنند لازم است دوباره این سرزمین را به نام خراسان بشناسد نمیدانم در این جمع گفته شده است یا نشده است و باید به حاکمیت فعلی کشور هم این پیشنهاد را داد که اگر ما دل میدیم به اسلام اگر ما شعار میدیم که تمامی کارکرد ما اسلامی باید باشد پیشنهاد مردم مسلمان افغانستان به این این است که اسم کشور را دوباره به خراسان برگردانند چون خراسان ارزش دارد دلایل دارد یکی از دلایلش این است که واجه خراسان در زبان روایات آمده است افغانستان در زبان روایت نیامده است وقتی ما مسلمان هستیم پس بر اساس روایات عمل کنیم لذا اسم این سرزمین می خراسان نکته بعدی که در خراسان وجود دارد این است از این سرزمین تعداد از مردم وقا میخیزن و قیام میکنند این مردم وقت قیام میکنن از حاکمیت وقت حقشان رو میطلبند. وقت بار اول قیام میکنند حقشان رو بهشان نمیدهند بار دوم قیام میکنند باز هم در بار دوم حقشان را برای اینها نمی دهند. بار سوم قیام می کنند. وقتی بار سوم قیام می این بار حقشان رو به اینها می دهند. ولی این بار این مردم قیامشان را آرام نمی کنن. بلکه به قیامشان ادامه می دهن. و این قیام تا آن جای ادامه پیدا می کند. که ظاهرا در کوفه کوفه کشور عراق در اونجاست که با رزمندگان امام عصر علیه الصلاة واسلام یکجا میشوند و از می جمله افرادی میگردند که در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارن حرکت کنند پس از نظر آینده هم مسئله مهدویت که به با باور همه ادیان چه برسد به اسلام به با باور همه ادیان آخر دنیا باید پر از عدل و داد بشود واژه خراسان دخالت دارد چرا؟, چرا؟, چرا؟, چرا؟ چون ما یک تعبیر دیگه هم داریم شخص معروف هست نام سید خراسانی این سید خراسانی است از اهل خراسان هست که در آخر و زمان می میزن بازی میکند کار طلبه ها به اینجا میکشد بانوی طلبه باشد یا آقای طلبه باشد این سرزمین سرزمین عجیب غریبی همه کابل، در همه کابل دینهای های وجود داشته قبل از اسلام بعدا اسلام آمده وارد این سرزمین شده همین کابل عجیب غریبش آن است میگه در همین کابل یک جویبار که هرکس کس را پیدا کند به خوشبختی میرسد این در اعتقادات مردم قدیم بوده است البته به هر حال سرزمین با قدمت و پیشنه پنج هزار سال قبل از میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و معلوم است که درش رازها و اسرار دفن شده است و وجود دارد و این سرزمین خراسان این گونه است که در آخر زمان دوچار تحولاتی می شود از همین جاست دلیل سومی که باز هم باید بازگشت به خراسان کرد و اسامی خش را هم از افغانستانی تبدیل به خراسانی کرد، همگان از طلاب و همگان از کسانی که به این سرزمین و به این بوم دل می‌بندند خود واژه خراسانی مثل امر به معروف و نهی از منکر میمانند چرا؟, چرا؟ چون همین که بگیم خراسانی وقتی مردم متوجه باشن ذهنشان به طرف سید خراسانی می روید وقتی بگیم خراسانی ذهنشان به همو قیام آخر و زمان می روید. وقتی آنجا رفت نشود امام علیه السلام به همه زودی ها قیام ظهور کند وقتی امام به این زودی ها ظهور کند باید یک ایده از ها آماده باشد لذا نفر خودش و ذهن خودش انگار دارد فشار وارد میکند و خودش را مورد وعظ و نصیحت قرار میدهد که بیا لیاقت خراسانی شدن را در خودت ایجاد کن به این دلیل هست که ما اسامی خشل رو باید تبدیل کنیم به خراسانی مخصوصا طلاق و همچنین کسانی که از نظر قومی و غیر قومی دارد در افغانستان بحث میکنند اونها هم از افغانستانی به خراسانی بیشتر دل میبندند در همه زمان فعلی ما افراد رو داریم که اسمشان رو خراسانی گذاشتند داشتیم و فعلا هم داریم برای کسانی که افغانستان را نام قومی هم میدانند اینها بهتر است به خراسانی برگردند آن گونه که برهم گشتند بنابر این واجه خراسان را باید دقت کرد این سید خراسانی را باید پرورش داد بانوان طلبه ضمن اینکه خودشان میتوانند از جمله یاران و قلبه امام 12 علیه الصلاۃ و سلام قرار بگیره میتوانن مخصوصا اگر بانوی سیده باشد اون سید خراسانی را بپروران این چه توفیق بزرگی که فرزند کسی بشود سید خراسانی این رسالت رسالت کمی نیست این نکته نکته کم اهمیتی نیست است که تا آخر عمر اگر شب و روز به این نکته فکر کنیم میارزد و باید در این زمین اقدام کرد سید خراسانی باید در همین جا با وجود بیاید بیاید. یاران خراسانی باید در همین سرزمین با وجود بیاید این از کابول، این از خراسان و آن از معنی بانو و آن از معنی طلبه واجه دیگی که در همین جا داریم دو تا واجه رو بخونیم و بحثیم روز رو تمام کنیم، بقیه رو بگذاریم و روزهای بعد واژه جامعه هست جامعه از نظر لغت وقتی ما نگاه کنیم بش میگن اسم فاعل منتها اسم فاعل زنانه است جامعه مثل فاضله میماند جامعه مثل عالمه میماند و نام های دیگه زنانه عارفه اینها نام های زنانه هستند برای بانوان استفاده می شود. از نظر لغوی اسم فاعل مؤنث هست مصدر و ریشه جامعه جمع هست به معنای گرد فراهم کننده و جمع کننده هست جامعه از نظر لغت به عنی گرد فراهم کننده و جمع کننده است. اما در اصطلاح جامعه شناسی آمدن از جامعه تعریفهای را ارائه کردند. ولی خلاصه از این تعریف ها یا نمونه از این تعریف ها را اینطوری می توان گفت که باید یک ایده از مردم زندگی همسان داشته باشند از نظر نیازها از نظر اقایی و اهداف مشترک باید داشته باشند وقتی مردم این گونه بود در یک سرزمین مشخصی زندگانی همسانی نیازها و قاید همسان و هدف مشترک داشت با, با این مردم می جامعه مثلا برای افغانستان و پاکستان با هم هر دوتایشان را جامعه نمی گوین. چرا؟ چون مردم پاکستان هیچگاه اهدافی که مردم افغانستان دنبال می کند دونبال نمی کند ولی بله مردم افغانستان هم اهداف را دنبال میکنند که برای کل افغانستان مفید هست لذا افغانستان برای خودش جامعه هست یا به تعبیر قشنگتر و درستترش خراسان برای خودش جامعه هست کشورهای دیگر برای خودش جامعه هست حالا این جامعه در قرآن کریم چیز مباحث بعدیست میگذاریم بعدن کم کم بهش میرسیم این مسائل مهم است. مرسم واژه‌ی که در اینجا وجود دارد، واژه عاشورا است. وقتی ما در عنوان اصلی دقت کنیم، بانوان طلبه‌ی کابل و جامع سازی عاشورایی است. واژه بانو را متوجه شدیم، واژه طلبه را بحث کردیم، واژه کابل را آشنا شدیم. جامعه رو هم آشنا شدیم رسیدیم در واجه آشورا آشورا را بیشتر از لغتنامه ها معنی نادرست کردند. در کتاب های لغت وقتی نگاه کنیم معنی آشورا را می نویسند آشورا یعنی دهم محرم چرا؟ چون آشورا و کلمه عشر به معنی ده هست هر دو همسان است لذا گفتن آشرا یعنی دهم محرم این معنی درست کلمه نیست تاسوا هم که نزدیک به تیسان هست تیسع. یعنی نو لذا تاسوا رو گفتن نهم محرم آشرا رو گفته دهم محرم این معنی معنی درست نیست آشرا و تاسوا معنی دیگی دارند. برخلاف تصور اهل لغت آشرا از ریشه عیش به معنای محل و جایست که میل به معاشرت و رفاقت و مصاحبت نمایان شود در جای که مثلا دو نفر یکیش میل پیدا میکند که اونجا رفاقت خودش رو به نمایش بگذارند همون محله رو میگن آشورا و روز آشورا رو که آشورا گفتن این از باب مبالغه هست چرا؟, چرا؟ چون مردم و آشورائیان و از ها و یاران امام حسین علیه السلام و در چونین روزی یعنی روز دهم محرم اون معاشرت و اون رفاقتش به شدت بالا رفت و به, به شدت بالا رفتن که هر یک از کسی دیگر جان فشانی تر میکن نمونه های وجود دارد فرزند می آید محضر حسین علیه و سلام آقا اجازه بدید با میدان بروم به محضر سلام می شاید مادرت رازی نباشد اون پسر جوان میگه آواجون این شمشیرم رو که می مادرم برایم داده این همون معاشرت و رفاقت همینطور تاساها به معنی جایست که بتوان ظرفیت رو بالا برد و فراخی ایجاد کرد سینه ها رو گشود باز کرد دیل تنگ نداشت بله دل بلکه دیل وسع برای شخص برایش ایجاد کند بهش میگن تاسعا این دو دانه واجه واجه عاشورا و واجه تاسعا از واجه های ابداعی امام سجاد علیه السلام است. یعنی قبل از امام سجاد علیه السلام واجه های عاشورا و تاسعا هیچ وجود نداشته و استفاده نمیشده. از این جهت از گفتن اگر در بعض از روایات آمده که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه واژه عاشورا را استفاده کرده این روایت روایت جعلی است روایت صحیح نیست بن امیه بخاطر اینکه اهمیت آشورا را کم رنگ کنن آمده به پای پیامبر روایت درست کردن به روایت جعل کردن لذا واجه های آشورا را در اونجا دخیل کرد. یکی از راههای های شناخت این که این روایت درست هست یا نیست همین واجه را می توان به کار یعنی آشورا و تاسعات تا زمان امام سجاق علیه السلام اصلا استفاده نشده هست. و هر روایتی که قبل از امام سجارعا علیه السلام درش واجه های آشرا و تازه ها باشد معنیش این است که اون روایت جای است، اون روایت ساختگی است. ولی واژه تاسعات تقریبا در هیچ روایت نیومده است. بله آشرا این گونه است. هست. وقتی ما دقت کنیم در این تعبیرات و در این واژ هر کدمش نکته هست هر کدمش دقت لازم را میطلبد تا سعا به معنی وسعت سینه و فراخی سینه و قلب یعنی یک بانوی طلبه باید قلبش و سینهش و دلش باید با قدر وسیع بشود و به قدر فراخ بشود که بی تواند این رسالت آشرایی رو تحمل کند الم نشرح لکه صدرک قرآن کریم می فرماید لم نشرح لکه صدرک آیا لک سینه رو فراخ نکردیم این معنیش اینست که بعضی وقت آدم تحمل بعضی کارها را ندارد نمیتواند مرگ فرزندش را تحمل کند نمیتواند کوشته شدن در راه خدا را تحمل کند نمیتواند سرزنش های مردم در راه خدا را تحمل کند وقت خداوند متعال راجب پیانبر می فرماید نش نشرح لکر صدرک آیا سینعد را فراخ نکردم؟ از این مسئله مسئله شرح صدر مهم هست کسی که ظرفیت یک کار را نداشته باشد نمی برای این است که بزرگ آنست که بتواند تحملش بیشتر باشد ظرفیتش بیشتر باشد اونه که ظرفیت نداشته باشد زود از کوره در میرود و از هم میپاشد اون بانوی طلبه کابولی میتواند در کابول جامعه آشرایی ایجاد کند که از شرح صدر برخوردار شده باشد دیزا اگر شرح صدر به خانومی پیدا نشود که بحث ما بحث بانوان هست و اصل کار مربوط همگان هست نمیتواند جامعه آشرایی درست کند این تاسعه هست آشرایش هم همین ممکن ممکنه یک کسی تحملش بالا بره ولی نتواند با امام حسین علیه السلام رفاقت کند نتواند با امه هدا رفاقت کند یک نفر میتواند مارگ مرگ فرزندش رو تحمل کند ولی در مسیر اهل بیت هیچ رفاقتی با وجود نیامیده باشد باز هم اثر ندارد چه مرد ما باشد چه زن ما باشد چه طلبه مردانه باشد چه طلبه زنانه باشد زمان میتواند موفق به جامعه سازی آشرایی بشود که بتواند با آشراییان رفاقت کند و معاشرت کند ما دیدم در روز آشرا بعضی رفاقت کردن. و البته خوشبختانه یک نکته را هم اینجا برای این که دل تعداد از مردم تسلی پیدا کند یاد کنم این که اگر تا هنوز در این زمین موفق نبودند ناومید نشون چون یعص و ناومیدی در دین وجود ندارد توبه کند بیاید در این مسیر وارد بشود افرادی که وارد تحصیل علوم دینی آموزش علوم دینی دانشجوی علوم دینی نبودن نگران نباشند نومید نشوند و وارد شوند حداقل کارشان به اندازه کار بدی که هر انجام داد نیست حور را شما میشناسید خور با هزار نفر آمد سر راه امام حسین علیه السلام را گیروف که مانع حرکت امام بیشود امام علیه السلام ازش درخواست کرد که حالا که وقتی قلیجین توریست من میخواهم برگردم خور گفت نه با من معموریت یافتم که شما را برگر... برگشتاندن نگذارم بلکه در جایی ببرم و بگذارم که در اونجا سرزمینی به آب و علف باشد از امام علیه السلام پیشنهادهای میشنود از جمله راجع به یکی از پیشنهادها خور میگوید پس من باید از کوفن کسب تکلیف کنم لذا نفر میتوریستد کوفه تا که برمیگردد، اون آبی که لشکریان خور داشت تمام میشه وقتی آبشان تمام میشن اینجا امام حسین علیه السلام و به لشکریان خور آب میدهند حتی به اسبان لشکریان خور آب میدهند است که خود خور به مبارزه با امام علیه و سلام آمده بعد از آن وقتی کار به آنجا میرسد که باید امام علیه سلام در جای برده شود که اونجا نه آب وجود داشته باشد نه علف یعنی یک سرزمین خشک باشد امام اله سلام و بر سلام را حرکت می دهند. نزدکه های کربلای فعلی همون جایی که فعلا بارگاه امام سین علیه سلات و سلام بودن در نزدکه های سرزمین آبادی بودن به نام نینوا امام علیه سلات و سلام از لشکریان هور که به اینجا برود یعنی در سرزمین نینوا سکونت گزیند ولی لشکریان یعنی خور نگذاشت و زا امو علیه و سلام را مجبورا آورد در سرزمین کربلا و در همون جایی که فعلا بارگاه امو علی قرار دارد خور با این وضعیت وقتی صبح آشورا می شود این طرف اون طرف نگاه می کند چشمش به کسی می خورد می گه امروز از آب داده ای؟ می نه می گه نمی آب بده میگه میخواهم آب بدم لذا هر تاشان کناره می گیرم تا به بحانه آب از لشکر دور بیشم وقتی از لشکر دور می شن، و کم کم داره به سمت خیمگاه محسن علیه السلام نزدیک میشه اونجا یک نفر دیگه است به نام مهاجر، طرف حور نگاه میکنه میگه حور میخوای به تنهایی به لشکر محسن علیه السلام حمله کنی به خیمگاه محسن علیه السلام حمله کنی حور جواب نمیده ولی بینه که حور چنان میلرزد به شدت تعجب آور. میگه خور چی شده تو را اگر از من تا هنوز سوال میکرد که دلیرترین مرد عرب کیست میگفتم خور هست حالا چی شده که این گونه میلرزد همینطور همین خور آهسته آهسته میآید به طرف خیمگاه ما حسن علیه السلام و سلام دیدین این ما اشارت شد آشرا این اسمش با ما علیه السلام رفیق شد به از خواب سلام پی بست لیزا آشور را میگه وقتی که هور آمد گریه کنان آمد از ایمه علیه سلام معذرت خواست ایمه علیه سلام بهش فرمود توبت قبول از عصبت بیا پاین هور عرض کرد آقا جان من همون نفر بودم که راه را بر شما خاندان بستم من همون نفر بودم که قلب شما خاندان را شکستم اجازه بدین همینطوری برگردم به سمت دشمن پایان کار حتما از اصل پایینه آمدنیست بعد امام علی سلام اجازه میدهت خور بر می‌گردد به سمت دشمن همینطور وقتی برمیگردد دشمنان رو سرزنیش میکند میگوید شما بد مردمی هستید نواده پیغمبرتون رو طلب کرده آخیر آب رو هم روی نواده پیغمبرتون بستید آیا این کافی نیست که آلا بر بروی فرزند پیغمبرتون شمشیر هم بکشید خداوند شما را در روز قیامت که روز تشنگی سیراب نکنه وقت خور چون این جملات را به کار میبرد، از سوی دشمن به سمت خور تیر رها میشه. چند تا تیر که میآید اینجا حور دوباره بر میگردد به سوی خیمگاه حسین علیه السلام مثل یک سرباز فداکار منتظر می‌ماند که آقا دستور دهد این استفاقه در جای نقل میکنند میگویند وقتی هور آمد از امام علیه السلام معذرت خواست و امام توبهش را پذیرفت هور از امام اجازه میطلبد که برود به خیمگاه و از زینب دلجویی کند. امام اجازه میدهد. وقتی امام اجازه میدهد، دهد میرود می رود به سمت خیمگاه بانوان اینجا صدا میزند با ناله که من همون هرم که شما اهل بیت را ترسندم آیا راه بازگشت هست؟ همگان از حور خوش آمد می کنند این معنی معاشرت یا همه آشرا یا رفاقت میگه وقتی هر آمد که شیمان شد تنها خودش نیامد. یکی از فرزندان هر به نام علی هست. هر به فرزندش میگه فرزندم برو به سمت میدان در رکاب نواده پیامبر بجن. وقتی این علیش میرود به سمت دشمن خوب میرزمد. وقتی که کشته می شود شهید می شود خور می بیند که فرزندش در راه امام حسین شهید شده اینجا کمی دلش خوشحال می شود که توانسته است یکی از فرزندانش در راه حسین شهید شد بانوانی طلبه اینها این گونه باید بود فرزندانمان باید در مسیر حسین رفاقت بازی کند و شهید بی شود. فرزند دیگر حور به نام بوکیر هست. بوکیر هم می در راه محسین علیه سالت و سلام شهید می شود. خود حور هم وقتی می به میدان آنچنان رجز می که برادر حور هم شیفتش می شود و در امام حسین علیه سلام می بعد از اینکه خور به شهادت میرسد، رسد غلام خور به نام طره هست ایشان هم میآید و ایمان سلام می اینها همون معاشرت هست در شب هفتم یا هشتم محرم هست حبیب ابن مظاهر به ایمان سلام عرضه می دارد آقا جان در این نزدیکان اقوام من هست اگر اجازه دهید میخواهم از تاریکی شب استفاده کنم و شاید اینها را توانم در یاریت بیاورم امام اجازه میدهد حبیب ابن مظاهر وقتی میرود اونجا از اقوام و خیشانش دعوت میکند دقت میکنیم. بانوان طلبه کابل و دعوت از خیشان و اقوام در این مسیر حبیب ابن مظاهر از اقوامش دعوت میکند اولین آول. کسی که این ندار لبیک میگوید شخصست به نام عبدالله ابن بوش. بعد در همون مجلس حدود نوت نفر اظهار آمودگی میده وقتی اینها می به سمت امام حسین علیه السلام و سلام متاسفانه این مسئله فاش شده لشکر دشمن مانعی از وصل شدن اینها به سف یاران امام حسین علیه السلام و سلام اینهاست معاشرت ها، اینهاست جامعه سازی ها از خداوند مهربان امیدواریم که ما و شما هم این بتوانیم هم وسعت سینه و فراخی سینه رو و شرح سعده رو پیدا کنیم و هم بتوانیم با با خسین و, حسین و معاشرت بکنیم انشاءالله تعالی به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد <تصفح> صلى الله عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا سيدنا مولانا ان نو توجهنا استشكون وتوسلنا بك إلى الله، بين يا اله الله يا من الله اسمعنا يَا الله ہوسا اللہ اللہ تنہا نے گزر انبروار با حسین حسین یا ما Ishti shikast mein mola darbar mein mara bhi gharat zahra darus taan hash بر رای دفتی قوم و طالبی گزارم روایه وای است حضرت زهره سلام آلیه بقدر در روز قیامت که خیلی از شیعیان شفاعت میكند که خیلي از موجودات آرزوی شفاعتش را در دل مروراند ما مستحق قنارهم از بس گنهكارهم باید حسوخ مارا rahara namo guzorn o jara kammo yo